سنت به ناز طبیبان نیازمند مباد وجود نازکت آزرده گزند مباد سلامت همه آفاغ در سلامت توست به هیچ آرز شخص تو دردمند مباد جمال صورت و معنا ز امن صحت توست که ظاهرت دجم و باطنت نژند مباد در این چمن چو درایت خزان به یغمایی رحش به سرو و بلند مباد در آن به سات که حسنت تو جلوه آغازد مجال تقنی بدبین و بدپسند مباد اران که روی چو ماهت به چشم بد بیند براتش تو بجز جان اون سپند مباد شفاز گفته شکر فشان حافظ جوی که حاجتت به علاج گلاب و غم